ششم اینکه این اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشور اینو گفتیم چکی در این نیست اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلون برنامه است مثلا نه این مال همیشه است اقتصاد مقاومتی یعنی مقابمسازی محکمسازی پایه های اقتصاد این چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم این چنین اقتصادی بارور خواهد بود و به مردم کمک می